صبح آفتاب نزده عباس و خاتون آبادی می طرف صحرا که پسر مشتی سفر سر راهشان سبز شد و به عباس گفت میری صحرا؟ عباس گفت آره میرم صحرا پسر مشتی سفر گفت تنهام که نیستی رفیق برای خودت پیدا کردی عباس گفت آره از خیلی آدم و بهتره پسر مشی سفر گفت راست میگی چقدرم شبیه خودته عباس گفت، درسته، خدا را شک که شبیه تو نیست، اون وقت مجبور بودم که با سنگ بکوبم و له کنم و بندازمش تو دره. پسر مشتی سفر گفت، یه چیزی میخوام بهت بگم عباس. عباس گفت، خیلی خوب، بگو. پسر مشتی سفر گفت، میخوام بگم به این خاتون آبادی زیاد رو نده. اگه زیاد پر رو بشه، فقط من یکی میدونم چه کارش بکنم، من از سگای عجنبی بدم میاد. خیلی هم بدم میاد عباس گفت خیلی خوب پسر مشتی سفر گفت حالیت شد یا نه؟ عباس گفت آره حالیم شد منم یه چیزی میخوام بهت بگم برو برو به مشتی سفر بگو که جلو زبون پسرشو بگیره اگه زیاد پررو رو بشه و تو کار مردم دخالت بکنه یه نفری هست تو بیال که اسمش عباسه میاد زبونشو میکنه و میندازه جلوی سگه اجنبی که از خاتون آباد وورده. پسر مشی سفر گفت. خیلی خوب. عباس گفت. حالیت شد یا نه؟ پسر مشی سفر گفت. گوش ببین چی میگن؟ یه هفته. فقط یه هفته بهت مهلت میدم که اسلام سوار گاری پیدا شد و آمد کنار آنها. پرید پایین و گفت. چی شده؟ چه خبره؟ چرا همچی به همدیگه خیره شدیم. عباس گفت، خبری نیست مشت اسلام. پسر مشتی سفر خندید و گفت، احوال رفیقشو میپرسیده اما اوقاتش تلخ شد. اسلام به عباس گفت، سوار شو بریم. عباس رفت بالای گاری و نشست بقل دست اسلام. اسلام را هی کرد، گاری راه افتاد و خاتون آبادی هم پشت سر گاری. از کنار باغ که میپیچیدند، زوزه خاتون آبادی بلند شد. عباس، پرید پایین، سنگ تیزی آمده، خورده بود به پای خاتون آبادی و پسر مشی سفر با سرعت از حاشیه استخر فرار می کرد. عباس و خاتون آبادی آمدن به بیل. خالی که پشت دیوار آتش و دود راه انداخته بود و شله می پخت. سرش را ورد بالا و عباس را دید و آمد این دیوار. خاشق چوبی بزرگی دستش بود، با دانه های له شده گندم روی خاشق. خاله گفت: بازم که این کسافت رو آوردی. عباس گفت: آره، مگه قرار بود نیارمش؟ خاله گفت: چند دفعه بهت گفتم که ولش کن بره. عباس گفت: من هم گفته بودم که ولش نمیکنم. خاله گفت: پس من برمیگردم هزوان پیش پسرم. عباس گفت: باشه، هر وقت که خواستی برو. خاله گفت: میدونی که اگه من برم بیچاره میشی و باید مثل اسلام خودت به خودت برسی؟ عباس گفت تو دیگه لازم نیست دلت به حال من و اسلام بسوزه؟ خاله گفت خیلی خوب حالا دیگه خودت میدونی؟ عباس گفت برو فکراتو بکن خاستی برو؟ خاستی نرو؟ خاله ایستاد و نگاهش کرد و رفت پشت دیوار و ناپدید شد و دود غلیظ و تیر رنگی تنوره کشید و بالا رفت عباس با خاتون آبادی رفتن طرف خانه اسلام عباس پنجره را باز کرد و رفت تو کاسه لعابی و کیسه را برداشت و آمد لب استخر آستینهایش را زد بالا و شروع کرد به شستن خاتون آبادی اول پاپا خوب بعد بز سیاه اسلام و آخر سر سکهای دیگر بیل و پسر مشی سفر آمدند و دوش به دوش هم ایستادند به تماشای عباس و خاتون آبادی که بی خودی می لرزید و خودش رالیس میزد. مردها در میدانچه پشت خانه مشتی سفر جمع شده نشسته بودند روی ایزوم‌ها و گپ میزدند. مشتی جبار گفت: شما میگین حالا چه کارش بکنیم؟ مشتی بابا گفت: آره از حالا باید یه فکر حسابی براش بکنیم. عبدالله گفت: روز به روز داره از این رو به آن رو میشه. مشی جبار گفت: حالا که هوا گرم شده دیگه نمیبردش. مشتی بابا گفت مگه خودش سهران میره که اون کسافت رو هم ببره عبدالله گفت هر جوری شده شر این خاطن آبادی لعنتی را باید از سر بیل دور کرد اموز اینال که با کمک چوبهای زیر وقل آمده و نشسته بود کنار تله ایزمها گفت بریم بهش بگیم که ولش کنه بره موسرخه از پشت تل ایزمها به خنده افتاد مشتی جبار گفت ول نمیکنه. یه فکر دیگه باید براش کرد عبدالله گفت اگه میفروختش ازش می خریدیم پسر مشی سفر گفت هیچگی آزه نیست با خاطر این کسافت دیناری دور بریزه مشتی جبار رو کرد به کت خدا و گفت تو چی میگی کت خدا کت خدا رو کرد به اسلام و گفت من نمیدونم. دونم مشت اسلام هرچی بگه قبول دارم اسلام که اخمایش تو هم بود گفت کاری به کارش نداشته باشیم حالا که عباس دلش به یه سگ پیر خوشه بذارین خوش باشه مشری جببار و مشتی بابا با هم گفتن چی؟ کاری به کارش نداشته باشیم بذاریم خوش باشه پسر مشری سفر به مشری جببار و مشری بابا گفت خیالتون آسوده من بهتون نشون میدم که چه کارش باید بکنیم اسلام بلند شد و رفت امو زینال هم با چوب زیر بغل راه افتاد و رفت طرف علم خانه. وقت از آن رسیده بود. از صدای از آن خبری نبود. عباس خاتون آبادی را برد توی اتاق و جلو پنجره نشاندش. خاله چراغ را روشن کرده نشسته بود تای اتاق. عباس شامش را از تاخچه برداشت و دوباره آمد کنار پنجره. شله را تا نصفه خرد و وقیه را گذاشت جلوی خاتون آبادی. خاله گفت من میدونستم که آخر سر میاریش تو خونه. عباس گفت همین حالا شستمش. خاله گفت خیال میکنی سگ با شستن تمیز میشه؟ عباس گفت همه شما خیال میکنید که فقط با کشتن تمیز میشه. شام که تمام شد عباس و خاتون آبادی رفتن پشت بام. خاله که بلند شد بخوابد کلش را از سوراخ وسط بام برد بالا و بیرون را نگاه کرد عباس خوابیده بود و خاتون آبادی نشسته بود بالا سر عباس و ستاره ها را تماشا می کرد و گاه گداری چشمک می زد و مشتی بابا و عبدالله و مشتی جبار و موسرخه و پسر مشتی سفر و خاله عباس نشسته بودند توی میدانچه پشت خانه مشتی سفر کنار توده هیزم‌ها. پسر مشتی سفر به خاله گفت ای hey خاله عباس، مشت عباس در چه آده؟ خاله گفت «هیچی. کاروبارش را ول کرده و همش دنبال اون خاتون آبادی لعنتیه عبدالله گفت دنبال کارم که نمیره خاله گفت خیلی، خیلی وقت نرفته مشتی بابا گفت داره خودشو به خاطر یه جونور به خاک سیاه مینشونه پسر مشتی سفر گفت به ما چه که خودشو به خاک سیاه میشونه یا نمیشونه من اصلا از این سگ خاتون آبادی بدم میاد خدا شاهده چشم ندارم ببینمش مشری بار گفت منم مثل تو خاله گفت فکر منو بدبخت رو بکنیم که باید تو اون خونه نماز بخونم اسمایل گفت هر جوری فکرشو بکنی هم به صرفه خود مشتباسه هم به صرفه بیل که شر این لعنتی رو از سر کنیم موسرخه گفت امروز عباس به من گفت که روزا برم و موازه به سگش باشم. مشتی بابا گفت، واسه سگ ولگرد میخواد نوکرم پیدا بکنه؟ اسماعیل گفت، به خدا عقل از کله عباس پریده. پسر مشتی سفر گفت، از اول عقل تو کلش نبود. مشتی جبار به پسر مشتی سفر گفت، خیلی خوب، حالا بگو ببینم، چه کار باید بکنی. پسر مشتی سفر چون باتمه زد وسط جماعت و بقیه نزدیک شدند و سر تا پا گوش شدند. پسر مشتی سفر به اسمایل گفت کار اول و تو باید بکنی. اسلام سوار گاری یونجه پیدا شد آمد و استاد روبروی جماعت و نگاهشان کرد و گفت چه کار میخوایین در دارین برای مهمون عباس کلک جور میکنین؟ هیچ کس جواب اسلام را نداد. نزدیکی های ظهر عباس خاتون آبادی را برده بود لب استخرو داشت میشست که اسماعیل از راه رسید عباس پرسید این وقت روز تو آبادی می میکنی اسماعیل اسماعیل گفت تو خودت می میکنی چرا نرفتی سر زمین عباس گفت میخواستم این حیبونکی رو بشورم و تمیزش بکنم اسماعیل گفت تمام کارتو ول یا همش به این حیبونکی میرسی عباس گفت چه کار بکنم من نرسم کی بهش میرسه خاله که نمیرسه کت خدا که نمیرسه اسلام که نمیرسه تو هم که نمیرسی پس کی برسه؟ اسمایل گفت خیلی خوب تا شب که تو تمام میکنی عباس گفت آره زودترم تمام میکنم اسمایل گفت حالا که تمام میکنی شب بیا خونه من خوهرتم به خالت خبر بده میایی که عباس گفت اینو چه کارش بکنم اسماعیل گفت، ولش بکن برای خودش بگرده و خودت بیا عباس گفت، نه، من نمیتونم ولش بکنم تمام بیل با این زبان بسته بده، ممکنه بلایی سرش بیارن اسماعیل گفت، حالا که اینجوره، ولش کن تو حیاتو در و ببن روشو بیا عباس که گوشهای خاتون آبادی رو تمیز میکرد گفت فکر خوبیه، حتما این کار رو میکنم موسرخه که تازه از راه رسیده بود آمد و نشست کنار عباس و شروع کرد به شستن گوش دیگر خاتون آبادی و خاتون آبادی زبانش را درآورد و شروع کرد به لیسیدن دست اسمایی دمدمه های شب عباس رفت به خانه اسمایی خوهرش پشت دیوار خرابه دود را انداخته بود و شله میپخت تا عباس را دید که پیدایش شده دوید جلو قاشق چوبی بزرگی دستش بود با دانه له شده گندم خواهر عباس گفت: «یه چیزی میخوام بهت بگم عباس عباس گفت: خوهر, بگو خواهر بگو خواهر عباس گفت: میگم که به هرچی بهت بگن قبول کن عباس گفت یلی ها چی میخوان بهم بگن خواهر عباس گفت, من نمیدونم عباس گفت: اسم این چیزی بهت نگفته خواهر عباس گفت همشان اومدن و منتظر تو هستن عباس دربچه چوبی دیوار را باز کرد اول پاها و بعد تن و آخر سر کلاش را برد تو اسمایل و مشتی بابا و مشی جبار و عبدالله نشسته بودن دور چراغ کوچکی که وسط اتاق روشن بود اسمایل گفت خیلی دیر کردی مشت عباس مشتی بابا گفت آره خیلی دیر کردی مشتی جبار گفت حتما سرت شلوغ بوده کارت زیاد بوده عباس به اسماعیل گفت میخواستم هوا تاریک بشه بیام مگه نگفتی که شب بیام اسماعیل گفت آره حرف حساب میزنی حالا بیا بشین ببینم عباس رفت و نشست وسط عبدالله و مشتی بابا و درست روبروی چراغ که نور کدری داشت عبدالله گفت چه حال و چه خبر عباس گفت کد خدا و اسلام کجا؟ مشتی بابا گفت، اون دوتا کار لازمی داشتن و نیومدن عباس گفت، خیلی خوب، با من یکی کار داشتیم؟ مشتی بابا گفت، آره، میخواییم باهات حرف بزنیم عباس گفت، حرف چی؟ مشتی جبار گفت، آره، میخواییم به زندگی تو سر و سامانی بدیم عباس گفت، یعنی چه کار میخوایم بکنید؟ مشتی بابا گفت، اول یه لقمه نون بخوریم و بعد مشی جبار گفت راستی مش اسمایل شله آذر نشده؟ اسمایل که بلند شد برود بیرون خاله و خواهر عباس با سفره و بادیه شله آمدن تو و نشستند کنار مردها صدایی موسرخه که در دور دست آواز میخواند از درکچه نیمه باز به گوش میرسید آواز نمیخواند غریبه ای را صدا میکرد اسلام نشسته بود کنار استخر و سایه بید پای سنگ مردشوری را توی آب نگاه می کرد که پسر مشتی سفر پیدا شد. پسر مشتی سفر که از هاشیه دیوارها حرکت عرکت می کرد رفت طرف خانه کت خدا را نگاه کرد و پرید آن طرف دیوار. بیل خاموش بود. صدای مشتی بابا و عبدالله از خانه اسمایل شنیده می شد. اسلام کلاهش رو برداشت و خم شد و سایه تاریک خود را توی آب نگاه کرد. پسر مشتی سفر کلنگ به دست از دیوار آمد بالا و پرید توی تاریکی و تاریکی پسر مشتی سفر را بلعید. سفره را که جمع کردند زنها رفتند بیرون. مشتی بابا به عباس گفت مشت عباس ما اومدیم اینجا که اغلامون رو رو هم بریزیم و سر و سامانی به زندگی تو بدیم. مشتی جببار گفت آره از همون روز که خواهرت اومد خونه ای اسماعیل تو یه جورایی شدی. عبدالله گفت تازه خدا را شک که خاله بود و بهت میرسید. رسید. مشتی بابا گفت و اینم از زور تنهایی بود که رفتی و یه سگ بدبخت و فلک برگشته خاتون آبادی را وردی بیل. عبدالله گفت تازه اگه یه سگ حسابی بود که حرفی نداشتیم. جبار گفت. پاپاخ بیلی خیلی از این خاتون آبادی تو بهتره. عبدالله گفت، البته که بهتره. تا حال و بال غریب و آشنایی نشده، شده؟ مشری بابا گفت، آره مشت عباس، ما اومدیم اینجا و گفتیم و شنیدیم. میخواییم برات زن بگیریم. مشی جبار گفت، منتظر زمستانم نیستیم. همین امروز فردا دست به کار میشیم. اسماعیل گفت، آره مشت عباس، همین الان فکراتو بکن و جواب رو راست به همه ما بده عباس سرش رو انداخت پایین و رفت تو فکر مشتی بابا و مشتی جبار چپاخاشان را رو روشن کردند و با لبخند نشستند به تماشای مشت عباس پسر مشی سفر تا نزدیکی خانه عباس رسید ایستاد. خاله از کنار حسیرها نگاه کرد و او را دید و با یک کاسه شله آمد بیرون دو نفری گذشتند و رفتند توی خانه پیش خاتون آبادی که منتظر ایستاده بود و دم تکان میداد. خاله رفت جلو و کاسه شله را گذاشت زمین. خاتون آبادی بی اشتها را بو کشید و خاله و پسر مشی سفر را نگاه کرد و چشم دوخت به کلنگی که دست پسر مشی سفر بود. پسر مشی سفر کلنگ را برد پشت سرش قایم کرد. خاله جلوتر رفت و گفت بیا بیا بخور. بخور خاتون آبادی خم شد و شروع کرد به لیست زدن شله پسر مشی سفر گفت تا بیا این بر خاله رفت و ایستاد پشت سر پسر مشی سفر پسر مشی سفر گفت خاله تو برو بیرون ببینم من چه کار میکنم خاله رفت بیرون آن دیوار و روی خاکها چنباتمه زد و چشم دوخت به خاتون آبادی که خم شده بود و با بیمیلی شله را لیس می میزد پسر مشی سفر یک قدم دیگر جدا آمد و ایستاد. کلنگ را دو دستی برد بالا و مثل برق آورد پایین و کوبید به کمر خاتون آبادی. اول صدایی بلند شد انگار که درختی را انداختند. بعد زوزه درماندهی که ناگهان منفجر شد و تبدیل شد به نعره وحشتناک و عجیبی که همه بیلی ها شنیدند. خاله گیج و مبهوت افتاد پای دیوار. پسر مشی سفر دوباره کلنگ را برد بالا و آورد پایین و نعره را خاموش کرد. اسلام که نشسته بود کنار استخر پرید بالا و بحت زده به انعکاس ناله خاتون آبادی گوش داد. و یلیها ریختند بیرون. پسر مشی سفر کلنگ به دست خود را انداخت توی تاریکی و گم شد. عباس تا وارد حیات شد، خاتون آبادی را دید که ساکت افتاده و تکان نمی‌خورد. خاله چراغ را روشن کرد و آورد. عباس خم شد و نگاه کرد. خون دلمه شده، دور خاتون آبادی را گرفته بود و کله لاشه افتاده بود توی بشقاب شده و تن از کمر جدا شده بود مثل درختی که باد شکسته باشد. و یلی‌ها آمدند و جمع شدند روی دیوارها. مشتی جبار و مشتی بابا و عبدالله و موسرخه یک طرف کت خدا و اسلام طرف دیگر و بقیه از بالای دیوار روبرویی چشم دوختن به خاله که نشسته بود کنار لاشه و زار زار گریه میکرد و به عباس که با دندانهای کلید شده و چشمان برآمده به صورت تک تکشان نگاه می‌کرد. کت خدا با صدای بلند گفت کی این کارو کرده؟ هیچکس جواب نداد کد خدا دوباره گفت یه نفرتون جواب بدین کی کمر این زبان بسته را شکسته کی سرشو از بدن جدا کرده اسلام صرفه کرد و چیزی نگفت. عباس که ساکت بالا سر لاشه ایستاده بود یک دفعه فریاد زد من میدونم کی این کارو کرده میدونم کی کمر این زبان بسته را شکسته کی سرشو انداخته تو بچقاب تلافیشو میکنم کمرشو نه یک بار صد بار میشکنم سرشو نمیکنم، له می از حیات آمد بیرون و مثل بر رفت طرف خانه کت خدا از روی دیوار پرید بالا و چند لحظه بعد کلنگ به دست پیدا شد و آمد کنار استخر خانه مشتی سفر را نگاه کرد که خاموش بود و تاریک و دوید سر کوچه اول سرخه پیدا شد و گفت مشتی عباس، مشتی عباس، اون در رفت رفت هزوان، رفت طرف هزوان عباس با دهان کف کرده زوز کشان از توی کوچه دوید بیرون و از حاشیه در رزدد و رفت طرف هزوان کتخدا <تصفيقی> کله موسرخه را چسبید و داد زد چرا <تصفيقی> بهش گفتی؟ الان گیرش میاره و میکشدش مشتی بابا و عبدالله موسرخه را از چنگ کتخدا درآوردند درآوردند. مشتی جببار گفت نرفته، نرفته هزوان تو بیله، تو خانه خودشونه کت خدا که برگشت، اسلام را دید که لاشه خاتون آبادی را کشان کشان میبرد طرف باغ و خاله هم فانوس به دست پشت سرش و مشری جبار کله خاتون آبادی را از گوشش چسبیده بود و دورتر از خود گرفته بود تا خون رو لباسش شتک نزند